چون رو خود سرات همیتونی زدت کنی بلی الان چی بگم به زافر کنم یه چیز بگم این کچودانی و شد که میذاری واسه داندوب کردنش یک یه yeah, this heavy reserved geçerdi ben hiç خب رفتم تو نو پکو. جی خب من الان اگه مثلا اینجا سلام بنویسم این می‌مونه. خب الان فاصله سلام خب برام. سلام را همین خب دیگه همین دیگه هیچی نمیدونم چی بگم تو هم زبط کنیم از زیرش در نری من میفرستم سایترم برا اسمشو میفرستم و چیزم میفرستم همین صدا من باهاش میفرستم که آفلوت کنیم اولیش با سبت نمید بعد یه جوری شده بود شبا, شبا دعا بکرد شد بعد آخرش برد تملیم کردم بعدش آخرش شد الان وقتی در اینجوری بشه یه بار آیان با من قره کرده بود اون جد خوردم اون جد گریه کردم زدم سوپر باور یه خلاصه این یه من الان خاطرم گفتم طولانی بشه تامی خاطر افتاد جیخ می نه حالا برم تر بعد بیگه خیلی خاطراز داره هرچی بگم تمام میشه تو هم بعدش خسته میشی بگی نمیشه چی بگم واقعا واقعا واقعا این دفعی بیگه واقعا آره برا پسر و مردم پادکست زد کرده بعد نیا نمیدونم چی بگم بگه چی میگه واقعا، واقعا، واقعا، واقعا، واقعا، دیگه انگلیسی تیک take Can okay, همین ببینید یک شی بگن آریان نمیشه ایش خیلی اخیلی be لیمانگرد من این خوب باشه. خدا خدافس واقعا دیدیش دیگه دلنم نمیاد خدا فیزیکو <تصفيق>